فصل پانزده دولت به بیش بیشعور دولت بروکراسی است و بروکراسی دولت است جو بادوایزر سخنگوی اتحادیه کارگران فدرال در هر کشوری دولت شمار زیادی از بیشعورها رو جذب می کنه. دلیل اونم ساده است دولت قدرت عمل زیادی در شکل دهی روش زندگی ما مادره و بیشعور هم تشنه قدرتان. مخصوصاً قدرتی که با اون بتوان به دیگران گفت چه کار بکنن، چگونه و چه وقت. برابر این به استخدام دولت در میان. دولت از دو بخش بزرگ تشکیل میشه. اول سیاست یعنی صاحب منصبان منتخب ما که فکر میکنن دولت رو اداره میکنن. دوم دیوان سالاری فصیل شده یعنی همون کسایی که واقعا دولت رو میچرخونن. هر دو بخش بیشعورا رو جذب می و به این ترتیب خودشونم قربانی بیشعوری می شن. البته شاید ما رقبتی به قبول این واقعیت که سناتورها، نمایندگان مجلس و قانونگذاران محلیمون بیشعورا نداشته باشیم، به ویژه اگه خودمون به اونا رأی داده باشیم. اما در بیشتر انتخاباتها انتخاب واقعی امکان نداره. در انتخابات فقط این امکان محیاز که به نامزدی که خطرش رای بدیم اگرچه نمایندگان خودشون رو تبلور قدرت مردم میدونن هر کسی میدونه که قدرت واقعی دولت از نظام دیوانسالاری گرفته شده نظامی که صدها هزار کارمند در اون مشغول به خدمات اجتماعی و کنترل زندگی ما هستند نمایندگان هر قانونی که دلشون میخواد تصویب کنن مسئله ای نیست کارمندان دولت اون رو به میل و سلیقه خودشون تفسیر و اجرا میکنن. مثلا در یک اصلاحیه کوچک بر قانون اساسی آمریکا که در سال 1913 به تصویب رسید به کنگره قدرت زیادی برای تعیین و جمعوری مالیات بر درآمد اعطا شد که ظاهراً زیادم بد نبود اما در ورای این ظاهر بیزرر که به طرز ماهرانهای برای جلب اعتماد و اطمینان عمومی نوشته شده بود، نظام اداری بزرگترین دستاورد را برای بیشهورها شورها بر اداره مالیات بر درآمد یا IRS که مخلوطی از گشتاپو، کاگبه و چند سازمان اطلاعاتی و امنیتی مخوف دیگر در نتیجه یک خودخواهی گروهی IRS به طور غیر مستقیم هر آزادی رو که در آمریکا یافت می شود، از آزادی مکالمات خصوصی تا حق شادمانی به دور از دخالت دولت قصف کرده است. در سالهای اخیر حتی شایع شده که IRS کامپیوترش رو طوری برنامه ریزی کرده که به طور خودکار مالیات دهندگانی و که برخلاف دیگران خوشحالن و زندگیشون رازیان پیدا کنه. تا وقتی که اوزا به این ترتیبه بیشوری هم در دولت با قدرت وجود داره البته این به اون معنا نیست که اداره مالیات بر درآمد تنها بخش نظام دیوان سالاریه که به بیشوری مبتلاس این نظام همچنان به بیشوری آلوده است تا زمانی که 1 ادارات دولتی تا مدت بعد از اون که نیاز به اونها مرتفع شده همچنان وجود داشته باشند 2 کمیسیون‌ها همچنان به عادت تشکیل بشن تا درباره مشکلاتی تحقیق و تصمیم گیری کنند که مدت هاست به فراموشی سپرده شده. سه میان افزایش قدرت یک سازمان دولتی و کاهش مداوم کیفیت حوزه مرتبط با اون سازمان رابطه ی مستقیم ایجاد بشه. مثلا، پس از اون که تشکیلات آموزش و پرورش از اداره به وزارتخانه ارتقا یافته کیفیت آموزش و پرورش در کشور ما مدام کاهش داشته. بعضی صاحب نظران معتقدند که بهتره وزارت آموزش و پرورش تعطیل بشه تا از سیتره بیسوادی جلوگیری بشه. اما زمام امور دست بیشوراست. چرا اینقدر نهادهای دولتی ناکار آمدند و بیشتر مستعد بدتر کردن مشکلات اجتماعی تا بهتر کردن اونا؟ چون دولت در مردابی از بیصلاحیتی فاجعهبار، بار، وقت کشی و تشریفات زائد اداری بیپایان فرو رفته. در مورد دولت، کار از بیشوری گذشته، صحبت از بیش بیشعوری است. گامرفیل، در اتوبیوگرافیش با نام اعترافات یک رئیس می نویسه در اداره من رسیدگی به یک برگه کاغذ از بازیافت اون زبان بیشتری میگیره. و یکی از منتقدانش اضافه کرده که تعفن رسیدگی به اون هم دست کمی از بازیافتش نداره این نوع بیشوری به صورتهای مختلفی دولت رو فلج کرده بعضی از صورتهای قابل ذکر ایناست یک، جنون جلسه دیوان سالاران همیشه در جلسه. هم. هر مسئله ای که پیش بیاد موضوع باید در کمیته های مربوط مورد بررسی قرار بگیره مشاوران اونو تحلیل کنن کمیسیونها ها گزارش بدن در گروه های تجدید نظر درباره بحث بشه و کمیته های اجرایی اونو تأیید کنن با این روش مسئولیت تصمیم گیری کاملا محو میشه هیچ کس مسئول و پاسخوی عواقب نیست و در آینده یقیه کسی و نمیشه گرفت دو بازی. تمام مراحل اداری با دقت فراوان به گونه ای تنظیم شده که برای هر کاری به سه نسخه نیاز باشه همین امر باعث بازی برای هر کاری میشه حتی اگر اون کار نوشتن نامه و درخواست کاغذ بیشتر برای بازی باشه اگه زمانی در روند تأمین کاغذ اشکالی به وجود بیاد دولت با خطر جدی مواجه میشه اتفاقی که باعث دق مرگ شدن بیشهورهای دیوان سالار و ذوق مرگ شدن ما خواهد شد سه مقررات سازمانها که دولتی بدون مقررات سردرگم میشن. چرا که هیچ کاری که واقعا کار باشه انجام نمیدن و بنابراین هویتشون فقط با مقررات تعریف میشه افزونه بر این مقررات از سازمان های دولتی در مقابل مردم محافظت میکنه. به این صورت که مانع از حق مسلم مالیات دهندگان برای پرسش درباره این واقعیت آشکار میشه که این سازمان ها و اداره ها چرا پول مردم را مصرف میکنن اما عملا هیچ کار مفیدی برای اونو انجام نمیدن؟ و آخرین که مقررات قدرت کافی برای رؤسا و مدیران تأمین میکنه تا با زیردستاشون دستاشون رفتار کنن. از این منظر شاید ارتش بهترین نمونه تبلور این نوع بیشعوری باشه. هیچ دلیل طبیعی برای اطاعت یا احترام گذاشتن به کسی که تمام زندگیش رو صرف آموزش صف در یک آموزشگاه نظامی کرده وجود نداره. از این رو باید از مقررات برای توجیه این کار غیر طبیعی کمک گرفته بشه این است دلیل آن چرا ارتش و در مقیاس وسیعتر دولت انقدر به مقررات اتکا داره برای توجیه اشتغال و سرپانیه داشتن بیشعور هراسآورترین مسئله درباره این نوع بیشوری اینه که دیوان سالاری نوعی استعداد درونی برای بزرگ شدن و توسعه خود دارد چیزی شبیه یک آدم چاق در شکلات فروشی مارشال مکدرولین در کتاب دسیسه بیشعورها می نوه تنها راه برای پنهان کردن بیفایده بودن یک چیز رشد بیشتر اونه. اگه چیز ساده بیفایده از پیچیده ترش کن پس از اون باز هم بیفایده خواهد بود. اما درکش برای مردم سختتر میشه و تغییرش هم هزینه بیشتری طلب میکنه. پسورد جادویی تمام دیوان سالاران اینه که بپیچان، بپیچان بپیچان. آیا برای متوقف کردن بیش بیشئوری خیلی دیر شده؟ اگه دست به کاری اساسی نزنیم پاسخ قطعا آری است. دیوان سالاری مثل اجدهاگ هفت سریه که هر وقت یکی از سراش قطع بشه، دو تا به جاش سبز میشه. بنابراین تنها راه نجات زدودن بیشعوری از جامعه است. اول به صورت فردی و بعد به صورت گروهی. درسته که تا پیش از این هرگز نابودی بیشعوری دولتی میسر نشده، اما تا پیش از 1969 هم سفر به ماه میسر نشده بود. آیا باید دنیا رو به بیشورها واگذار کنیم؟ یا یه بار برای همیشه تکلیفمونو با این نظام دیوانسالار روشن کنیم